عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. ما به بررسی نیمه های کتاب محیج دانیال رسیدیم، کتابی پر از هشدارها و مثال بزرگ. متشکریم که تا امروز با ما همراه بودین. دایما اینه که خدا از این درس ها برای تقویت ایمان شما استفاده کنه. با هم به معلممون گوش میکنیم. کتاب های زیادی در کتاب مقدس هستند که میشه اونها را به صورت نمایشنامه عرضه کرد یادتونه که گفتیم کتاب عیوب رو خیلی خوب میشه به صورت نمایشنامه ادبی عرضه کرد. کتاب استر هم یکی دیگر از این کتاب ها در کتاب مقدس هست که میشه اون را به صورت نمایشنامه عرضه کرد این در مورد کتاب دانیال هم صدق میکنه. داستان های شش با اول کتاب دانیال بسیار مهیج هستند و میشه اونها را به صورت یک نمایشنامه ارزه کرد. در واقع میتونیم همه دوازده باب رو به صورت یک نمایشنامه در بیاریم. اولا باید به نقش ها توجه کنیم. نقش ها میتونن شامل شخصیت های مثل دانیال و سه دوست او هنانیا، میشائیل و ازریا باشن. دیگر شخصیت ها و نقش های این نمایشنامه میتونن رهبران سیاسی بابل باشن. وقتی که شش باب اول دانیال رو میخونید یادتون باشه که دارید تاریخی هفتاد ساله رو میخونید. در این شش باب به دو امپراتوری بزرگ جهان اشاره شده، اون شش باب شامل زمان زیادی به لحاظ تاریخی میشه. به علاوه دانیال و سه دوست او، شما به هنر پیچه ای نیاز دارید که نقش نبوکت نصر، رهبر بزرگ امپراتوری بابل رو بازی کنه که در چهار باب اول این کتاب رو میبینید بینید. از دیگر نقشها همینطور میتونیم. بلشسر پسر نبوکت نصر، داریوش مادی و کوروش کبیر، ملکه ها و مردان حکیم بابل، سیاستمداران و سربازان رو نام ببرید. اگر شما بخواید این کتاب رو تبدیل به نمایشنامه کنید، صحنه نمایش میتونه شهر بابل باشه. عملا از عهد قدیم تا عهد جدید پنج امپراتوری بزرگ در جهان حکومت کردند. اولین حکومت حکومت آشوری‌ها بود. بابلی‌ها بر آشوری‌ها غلبه کردند. در دانیال باب شش می‌خونیم که مادها و پارسی‌ها بر بابلی‌ها غلبه کردند. و بلاخره امپراتور بزرگ رومی بر پارس ها غلبه کرد. بعد امپراتور روم یونانی ها رو مغلوب کرد و در این موقع به عهد جدید می رسید. امپراتوری آشور وقتی شما به کتاب دانیال می رسید قبلا اومده و رفته بنابراین اولین امپراتوری که در کتاب دانیال بهش اشاره شده امپراتوری بابل هست. که هفتاد سال طول کشید و امپراتوری فارس با 127 ایالت مادی و فارسی هست که زمینه تاریخی وقوع کتاب استر هم بوده. در نبوت دانیال، دانیال به عبرقدرت های جهانی یونانی و رومی اشاره کرده. وقتی به دومین بخش از کتاب دانیال یعنی به آخر می رسیم، این چهار ابرقدرت جهانی، بابل، پارس، یونان و روم در بعضی از نبوت های دانیال به تصویر کشیده شدن. برای اینکه بتونیم جایگاه تاریخی کتاب دانیال رو درک کنیم و به شخصیت خاص نبوکت نصر پی ببریم، مهمه بدونیم که شهر بابل چگونه شهری بوده به شرحی که در کتاب دانیال از شهر بابل اومده گوش کنید بابل صحنه خدمت دانیال شهر عجیبی در دنیای باستان بود این شهر محل سکونت دو میلیون نفر بوده و مورخین میگن که دیوارهای اطراف شهر حدود 100 کیلومتر طول داشته احتمالاً در هر سمت 25 کیلومتر بوده این دیوارها 110 متر ارتفاع داشتند تقریبا به اندازه یک ساختمان سی37 طبقه و تقریبا سی متر زخامت داشتند و حدود سی متر یا به اندازه چهار طبقه در زمین فرو رفته بودند تا اینکه دشمنان نتونن زیر اونها تونل بزنن. اونها از بلوک های سانتی متر مربعی با ضخامت 25 سانتی متر ساخته شده بودند. حدود 400 متر فضای خالی بین شهر و دیوارها در سرتاسر سر طول دیوار وجود داشت. دیوارها در خارج به وسیله خندقهای عریزی پر از آب محافظت می شد. حدود 250 برج بر روی دیوار قرار داشت، اتاقهای نگهبانی برای سربازان و صد دروازه برنجی در دیوار وجود داشت. شهر توسط رود فرات تقریبا به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. هر دو ساحل توسط دیوارهایی در سرتاسر سر مسیر رودخانه محافظت می شد و 25 دروازه داشت که لنجهایی دو قسمت شهر رو به هم مربوط می کردن. یک پل سنگی به طول حدود یک کیلومتر و یازده متر ارز و پلهای متحرکی که شبها بلند می نیز دو قسمت شهر را به هم وصل میکردند. تونلی در زیر رودخانه وجود داشت که هفت متر ارز و چهار متر ارتفاع داشت بعد از هفواری هایی که اخیراً صورت گرفته داستانهای شگفتانگیزی که از طرف مورخین در مورد شهر گفته شده بود تایید شده معروفترین معبد در وادی فرات معبد بزرگ مردوک. مجاور برج بابل بود. حقیقتاً بابل شهر طلا بود. بابل شهری بسیار مذهبی بود. شهر سیاسه معبد و 180 مذبح برای اشتارود داشت. قصر نبوکدنصر که اغلب دانیال به اونجا میرفت، یکی از مهمترین ساختمان های روی زمین بود. در سالهای 1899 تا 1912 پی به وسعت خرابی اون بردند و همه این چیزها به لحاظ شناسی تأیید شد دیوارهای جنوبی بارگاه بیست و دو پا زخامت داشتند قسمت شمالی قصر با سه دیوار محافظت می شد. فقط دیوارهای شمالی اون بالای هجده متر زخامت داشتند میتوان گفت که اون شهر در دنیای باستان شهری تسخیرناپذیر بود باغهای معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان بود باغها در ارتفاع پنجا پنج متری معلق بودند در دوره دانیال شهر بابل نه تنها اولین شهر دنیا بود، بلکه بر اکثر امپراتوری های قدرتمند اون زمان حکمرانی میکرد این امپراتوری فقط هفتاد سال دوام آورد. دانیال از ظهور و سقوط امپراتوری در اونجا حضور داشت. دانیال دوست و مشاور شاه بود. نبوکت نصر یک نابغه بود و موسس واقعی امپراتوری بابل بود. از هفتاد سال تاریخ امپراتوری او چهل و پنج سال حکومت کرد. اگر بخواهیم از کتاب دانیال ای بسازیم شهر بابل که شرح آن گذشت صحنه این نمایشنامه خواهد بود یک نمایشنامه باید هنرپیشه و صحنه ای که هنرمندان در اون ایفای نقش می‌کنند داشته باشه یک نمایشنامه همینطور باید یک طرحی داشته باشه وقتی که کتاب دانیال رو به صورت نمایشنامه درمیاریم طرح نمایشنامه ما چی هست؟ عملاً صحنه بیش از فقط شهر بزرگ بابل است صحنه اسارت بابلی ها هم هست چون قوم خدا در آنجا اسیر هستند صحنه واقعی صحنه سیاسی بابل هست جایی که دانیال در اونجا زندگی میکنه و خدمت بزرگ نبوتش رو در اونجا انجام میده طرح نمایشنامه ما دو قسمت داره در شش باب اول کتاب شما وقایع تاریخی رو دارید قسمت دوم طرح ما در باب 7 تا دوازده است جایی که دانیال رویاش رو دریافت میکنه این قسمت از طرح چیزی که میتونید بهش اسکاتولوژی یا مطالعه چیزهای آینده بگید. نقشه نبوتی بزرگ خدا برای تمامی اصحار. بنابراین باب یک تا شش وقایه تاریخی و بابهای های هفت تا دوازده مکاشفات نبوتی هستند. بعضی ها که مفهوم نبوت کتاب مقدسی میتونه به سه صحنه تقسیم بشه. صحنه اول تقسیم میشه به تاریخ بشریت از ابراهیم تا اسارت بابل. که میتونه از زمان تولد این قوم خاص باشه که ابراهیم پدرشون بود تا زمان اسارت بابل از اسارت بابل تا آمدن ثانویه مسیح میتونه صحنه دوم باشه از آمدن ثانویه مسیح تا حکومت هزار ساله میتونه صحنه سه باشه ادعی صحنه نبوت کتاب مقدسی رو به این ترتیب تقسیم بندی میکنند با نگاه به نبوت کتاب مقدسی از این دیدگاه میبینید که دانیال در پایان صحنه اول و در ابتدای صحنه دوم زندگی می کرده. از اونجایی که نبودهای دانیال در باب هفت شروع میشه، او سحنه های دوم و سوم رو به ما نشون میده. تفسیر کتاب دانیال بسیار سخت هست. تفسیر کردن اون غیر ممکن نیست، ولی خیلی سخته. تفسیر کتاب مکاشفه و همینطور کتاب هزقیال هم کار سختی هست. شما باید از روح القدس بخواهید کمک کنه تا این چیزها رو درک کنید. اگر دیدگاهی از نقشه خدا برای تاریخ بشریت بخواهید، میتونید اون رو در این رویاهای دانیال ببینید. من سعی کردم که به شما دیدگاه‌هایی بدم که میتونه به شما کمک کنه رویاهای دانیال رو درک کنید. وقتی رویاهای دانیال رو ملاحظه می‌کنید، سمبول‌هایی خواهید دید. من می‌خوام به شما تکلیفی بدم. اول ببینید آیا میتونید سمبول‌ها رو پیدا کنید و اون‌ها رو تشخیص بدید؟ بعد از خودتون بپرسید چه ارتباط و تعاملی بین این سمبول ها که در داستان گفته میشه وجود داره بعد از خودتون این سوال رو بپرسید آیا خود دانیال این کتاب رو نوشته یا روح القدس نویسنده این کتاب هست؟ و معنی سمبول ها و رابطه بین اونها چی هست وقتی به این سه سوال پاسخ دادید از خودتون بپرسید حالا که روح القدس من رو روشن میکنه به نظر من این سمبول ها و رابطه بین اونها چه معنی داره این روش بررسی رویه های نبوتی دانیال هست. در جلسه اول کتاب دانیال من نمای نزدیکی از او به شما ارائه کردم. در این جلسه میخوام روی کس دیگری تمرکز کنم. دانیال تنها شخصیت این کتاب کتاب مقدس نیست. در باب سه داستان مهیجی هست که شما احتمالاً وقتی بچه بودید در کانون شادی اون رو شنیدی. داستان در مورد سه دوست دانیال هست که اسمهاشون به شدرک، میشک و ابد نحو تغییر یافته بود در این داستان به دانیال حتی اشاره هم نشده این سه جوان مثل دانیال یهودیان متحدی بودند اونها مطلقاً به قدرت خدا ایمان داشتند به قدرت دعا ایمان داشتند و مطلقاً به مشیت و اهداف الهی ایمان داشتند اونها هم مثل دانیال خودشون را با خوردن غذاهای نبوکت نصر آلوده نکردند و از سجده کردن در مقابل مجسمه قول پیکر تلایی که به دستور نبوکت نصر ساخته شده بود امتنا کردند شما داستان رو میدونید اونها به تون آتش انداخته شدند چون از پرستش اون مجسمه طلایی امتناع کردند حالا در اون داستان زیبا در باب کتاب دانیال ملاحظه کنید که این جوانان حتی مطمئن نیستند که خدا به طرز آسای اونها رو نجات خواهد داد اونها به نبوکت نصر گفتند ما به مجسمه تو تعظیم نخواهیم کرد ما یهودی هستیم و میدونیم که باید فقط خدا رو بپرستیم بنابراین نمیتونیم هیچ چیز دیگه ای رو بپرستیم و در مقابله با نبوکدنصر به او گفتند خدای ما به طرز معجزه آسایی میتونه ما را از تون آتش تو نجات بده شاید هم نجات نده خواه نجات بده یا نه ما مجسمه رو پرستش نخواهیم کرد اونها مطمئن نبودند که آیا از تون آتش نجات خواهند یافت یا نه معجزه زمانی صورت گرفت که اونها به درون تون آتش انداخته شدند شما شخصیت‌های دیگری رو در کنار دانیال می‌بینید که نمونه هایی در کتاب دانیال بودن. مثال دیگری که میخوام در این جلسه بهش تمرکز کنیم بابلی هست. در جلسه اول ما روی ایمانداری تمرکز کردیم که اعلام کرد اونها نمیتونند از او بابلی بسازن. حالا در این جلسه می خواهیم بر روی بابلی تمرکز کنیم که به خاطر ایستادگی دانیال و دوستانش ایمان آورد وقتی که اونها تصمیم گرفتن خودشون رو آلوده نکنن و یا توسط بابلی ها آلوده نشند، اگر به شهری که از شهر بابل و یا از خصوصیات قصر نبوکت براتون براتون خوندم توجه کنید قطعا خواهید فهمید که نبوکت نصر چه قدرتی داشته در باب پنج از کتاب دانیال خونیم او هر کسی رو می‌خواست می‌کوش و هر کسی رو که می‌خواست زنده بمونه زنده می‌موند. قدرت و اقتدار نبوکت نصر قطعی بود. برای ما سخته که قدرت مطلق دیکتاتوری مثل نبوکت نصر رو درک کنیم. وقتی که دیدگاه های تاریخی از این مرد به دست میارید. میتونید تأثیر باب چهار کتاب دانیال رو درک کنید. دانیال البته برای نبوکت نصر شهادتی بود. شکی نیست که بازگو کردن امو آسای خواب نبوکت نصر و تعبیر اون تأثیر عمیقی بر نبوکت نصر گذاشت. در اون رویا که ما در جلسه بعد وقتی به مکاشفات نبوتی دانیال میرسیم مطالعه خواهیم کرد نبوکت نصر مجسمه ی انسانی رو دید. که سرش از طلا بود، سینهاش از نقره، رانها و شکم از برونز. ساقها از آهن و پاها گلین بودند. تعبیر دانیال این بود که اینها چهار پادشاهی تاریخی بزرگ بودند که ما در دیدگاه تاریخی که مطالعه کردیم و در نبوتهای اون به اون اشاره کردیم. وقتی دانیال خواب نبوخذنصر رو تعبیر کرد به او گفت تو سر طلایی هستی. چون تو الان قدرت فعلی جهان هستی اما قدرت تو روزی به پایان خواهد رسید. پادشاهی تو توسط پادشاهی دیگری سقوط خواهد کرد. و اون حکومت قسمت ای این مجسمه هست این حکومت به اندازه تو بزرگ نخواهد بود اون حکومت حکومت پارس هست حکومت برنجی یونانیان هستند. بعد از پارسیان خواهند اومد و بالاخره حکومتی که توسط آهن نشون داده شده امپراتوری روم هست حالا قطعا وقتی نبوکت نسر این تعبیر رو شنید امر بر او مشتبه شد و فکر کرد حالا که من سر طلای مجسمه هستم پس حالا میرم. مجسمه طلایی برای خودم می‌سازم و همه رو وادار می‌کنم اون رو بپرستند. او در این مرحله خیلی تغییر کرده و همونطور که خواهیم دید تأثیر عمیق دانیال و سه دوست او زندگی او رو تغییر داده. من اعتقاد دارم چیزی که باعث شد نبوکت نصر به خدای حقیقی اعتراف کنه همین تأثیر دانیال و دوستانش بوده. یکی از بزرگترین بابها در کتاب مقدس باب چهار کتاب دانیال هست که مربوط به صحبت‌های نبوکت‌نصر بزرگترین امپراتور جهان است چقدر شگفت انگیزه که میفهمیم یک نوجوان یهودی میتونه قلبن تصمیم بگیره که امپراتور بزرگ جهان نخواهد توانست از او یک بابلی بسازه بلکه او از این امپراتور و از نبوکت نصر یک ایماندار خواهد ساخت و او این کار را انجام داد دانیال وقتی به طور معجزه‌آسایی های نبوکت نصر را بازگو و تعبیر کرد تأثیر عمیقی بر زندگی او گذاشت حالا ما میبینیم که سه دوست دانیال، هنانیا، میشائیل و ازریا وقتی که به طور موجز آسایی از تون آتش نجات یافتند و به مجسمه طلای پاتشاه تعظیم نکردن چه تأثیر شگرفی بر روی او گذاشتن. کاربورت های شخصی هست که میتونیم از این داستان یاد بگیریم و بزرگترین اونها اینه که اگر اونطور که باب میل ماست خدا به دعای ما جواب نده به او اعتماد کنیم. حالا ما واقعا نمیدونیم که نبوکت نصر چه چیزهای دیگه ای رو تجربه کرده بود. چیزهای مختلفی ممکنه برای او پیش اومده بود که در کتاب دانیال ثبت نشده. در رویای نبوکت نصر سنگی بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شد. این خارقلاده بود و این سنگ بزرگ بر روی پاهای مجسمه نبوکت نصر که از گل و آهن ساخته شده بود افتاد. و تمام مجسمه رو در هم شکست و اون رو مانند کاه بر روی زمین پراکنده کرد تعبیری که دانیال به نبوکت نصر گفت این بود که تمامی این پادشاهی ها که با تلاو و نقره و برنز و آهن و گل به تصویر کشیده شده اون پادشاهی هایی هستند که قطعا روزی با پادشاهی خدا به طور خارق العاده ای فتح خواهند شد حالا من مطمئنم که همه اینها بر روی هم تاثیر عمیقی بر نبوکت نصر گذاشت ما واقعا نمیدونیم که خدا چطور زندگی دانیال و کلام و او رو به کار گرفت تا نبوکت نصر رو به دست بیاره اما چیز آسا اینه که وقتی به باب چهار رو کتاب دانیال می‌رسید این چیزیه که می‌خونید از نبوکت نصر پادشاه به تمامی قوم‌ها و ها و زبان‌ها که بر تمامی زمین ساکنند سلامتی شما افسون باد من مسلحت دانستم که آیات و عجایبی را که خدای تعالی به من نموده است بیان نمایم آیات او چقدر بزرگ و عجایب او چقدر عظیم است این سنگ بزرگی که بر روی مجسمه افتاد، تبدیل به کوهی عظیم شد. واضحه که وقتی دانیال به نبوکت نصر گفت که اون صخره عظیم که مجسمه را در هم شکست، نماد پادشاهی خدا هست و قرار هست بیاید، تأثیر عمیقی بر او گذاشت. نبوکت نصر شهادتش رو اینطور ادامه میده. ملکوت او ملکوت است و سلطنت او تا ابد من که نبوکت نصر هستم، در خانه خود مطمئن. و در قصر خیش خرم میبودم خوابی دیدم که مرا ترسانی و فکرهایم در بسترم و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت پس فرمانی از من صادر گردید که جمعی حکیمان بابل را به حضورم بیاورند تا تعبیر خواب را برای من بیان نمایند یادتونه که این اولین خواب نبود و این هم یکی دیگه از خواب هاست آنگاه مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجمان حاضر شدند و من خواب را برای ایشان باز گفتم لیکن تعبیرش را برای من بیان نتوانستند نمود بالاخره دانیال که موافق اسم خدای من به بلچسر مسماست و روح خدایان قدوس در او می باشد درآمد و خواب را به او باز گفتم ای بلشسر رئیس مجوسیان چون می دانم که روح خدایان قدوس در تو می باشد و هیچ سری سر برای تو مشکل نیست پس خوابی که دیده و تعبیرش را به من بگو یادتونه که رویایی که در باب چهار شهر داده شده اولین رویای نبوکدنصر نبود که او نمیخواست خواب رو بیان کنه و از مردان حکیم میخواست که هم خواب و هم تعبیرش رو بگن. او این رویا رو شرح داد و از مجوسیان، جادوگران، کلدانیان و منجمان خواست که رویایش را تعبیر کنند. وقتی اونها نتونستن رویای او رو تعبیر کنند، نصر دانیال رو آورد که خوابش رو تعبیر کنه. نبوکت نبوکدنصر این خواب رو اینطور شرح میده: رویاهای سرم در بسترم این بود که نظر کردم و اینک درختی در وسط زمین که ارتفاعش عظیم بود این درخت بزرگ و قوی گردید و بلندیش تا به آسمان رسید و منظرش تا اقصای تمامی زمین بود برگهایش جمیل و میوهش بسیار و آزوقه برای همه در آن بود حیوانات صحرا در زیر آن سایه گرفتن و مرغان هوا بر شاخههایش هایش معوا و تمامی بشر از آن پرورش یافتن در رویاهای سرم در بسترم نظر کردم. و اینک پاسبانی و مقدسی از آسمان نازل شد که به آواز بلند ندا در داد و چنین گفت درخت را ببرید و شاخه‌هایش را قطع نمایید و برگ‌هایش را بیفشانید و میوه‌هایش را پراکنده سازید تا حیوانات از زیرش و مرغان از شاخه‌هایش آواره گردند لیکن کنده و ریشه‌هایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزههای صحرا واگذارید. و از شبنم آسمان تر شود و نصیب او از علف زمین با حیوانات باشد. حالا به تغییر در زمایر شخصی نگاه کنید. از شبنم آسمان تر شود و نصیب او از علف زمین با حیوانات باشد. دل او از انسانیت تبدیل شود و دل حیوان را به او بدهند و هفت زمان بر او بگذرد. این امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقدسین گردیده است تا زندگان بدانند. حالا به این توجه کنید. این چندین بار در این باب تکرار شده که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می دهد و پهسترین مردمان را بران نصب می نماید. این خواب را من که نصر پادشاه هستم دیدم و تو ای بلش از سر تعبیرش را بیان کن زیرا که تمامی حکیمان مملکتم نتوانستند مرا از تعبیرش اطلاع دهند. اما تو میتوانی توانی چون که روح خدایان قدوس در تو میباشد. انگاه دانیال که به بلچسر مصمامی باشد، ساعتی متحیر ماند و فکرهایش او را مسترب سا. پس پادشاه متکلم شده گفت، ای بلچسر خواب و تعبیرش تو را مسترب نسازد. بلچسر در جواب گفت، ای آقای من، خواب از برای دشمنانت و تعبیرش از برای خسمانت باشد. درختی که دیدی که بزرگ و قوی گردید و ارتفاعش تا به آسمان رسید و منظرش به تمامی زمین، و برگهایش جمیل و میوهش بسیار و آزوغه برای همه در آن بود و حیوانات صحرا زیرش ساکن بودن و مرغان هوا در شاخههایش هایش گزیدند ای hey, پادشاه، آن درخت تو هستی، زیرا که تو بزرگ و قوی گردیده ای و عظمت تو چنان افسوده شده است که به آسمان رسیده و سلطنت تو تا به اقصای زمین و چون که پادشاه پاسبانی و مقدسی را دید که از آسمان نزول نموده گفت درخت را ببرید و آن را تلف سازید لکن کنده ریشه هایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزه های صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیبش با حیوانات صحرا باشد تا هفت زمان بران بگذرد ای پادشاه طبیل این است و فرمان حضرت متعال که بر آقایم پادشاه وارد شده است همین است که تو را از میان مردمان خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و تو را از شبنم آسمان تر خواهند ساخت و هفت زمان بر تو خواهد گذشت و حالا به این توجه کنید تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی رانی می کند و آن را به هر که می خواهد عطا میفرماید و چون گفتند که کنده ریشه های درخت را واگذارید پس سلطنت تو برایت برقرار خواهد ماند بعد از آنکه دانسته باشی که آسمانها حکمرانی می‌کنند دوباره توجه کنید که تاکید شده لحاظا ای پادشاه نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را به ادالت و خطایای خیش را به احسان نمودن بر فقیران فدیه بده که شاید باعث طول اطمینان تو باشد اما همه این وقایه دوازده ماه بعد برای نبوکد نصر اتفاق افتاد از اینجا به بعد کس دیگری قلم را به دست می‌گیرد و به نوشتن ادامه میده چون نبوکد نصر پیداست که دیوانه شده بعد از انقضای دوازده ماه او بالای قصر خسرویی در بابل میخرامید و پادشاه متکلم شده گفت آیا این بابل عظیم نیست که من را برای خانه سلطنت به توانایی قوت و هشمت جلال خودم بنا نمودم این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شده گفت ای پادشاه نبوکد نصر و تو گفته میشود که سلطنت از تو گذشته است و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی کند و آن را به هر که می‌خواهد میدهد. در همان ساعت این امر بر نبوکدنصر واقع شد و از میان مردمان رانده شد مثل گاوان علف میخورد. و بدنش از شبنم آسمان تر میشد تا موی مثل پرهای اقاب بلند شد و ناخنهایش مثل چنگال های مرغان گردی حالا نبوکت نصر دوباره قلم به دست میگیره وقتی نبوکت نصر شروع به نوشتن میکنه پرده ترسناک تموم شده بعد از انقضای آن ایام من که نبوکت نصر هستم چشمان خود را به سوی آسمان بر و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارک خواندم و حی سرمدی را تسبیح و همد گفتم زیرا که سلطنت او سلطنت جاودانی و ملکوت او تا عبدالعباد است و جمعی ساکنان جهان هیچ شمرده می شوند و با جنود آسمان و سکنه جهان بر وفق اراده خود عمل می نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه می کنی؟ در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من هشمت و زینتم به من باز داده شد و مشیرانم و عمرایم مرا تلبیدن و بر سلطنت خود استوار گردیدم و عظمت عظیمی بر من افسوده شد. الان من که نبوکت نصر هستم پادشاه آسمانها را تسبیح و تکبیر و همد میگویم که تمام کارهای او حق و تریخهای وی عدل است و کسانی که با تکبر راه می‌روند، او قادر است که ایشان را پس نماید. فکر می کنم این یکی از مهمترین بابهای کلام خدا هست چون اونها سخنان نبوکت نصر هست وقتی شما تاریخ باستان رو می خونید و به نکاتی که در مورد اسرائیل یهودا و پادشاهی شمال و تمام چیزهایی که در کتابهای انبیا مطالعه کردیم می رسید جا می خورید. شما واقعا اگر یک سری تاریخ باستان رو مرور کنید می این رو درک کنید که اینها چیزهای مرموز یا افسانه اینها تاریخی نیستند هستند. این یکی از بزرگترین فرمان روایان دنیا بود که دنیا به خودش دیده بود مردی که قطعاً آدم مستبد، یک دیکتاتور مطلق و قطعاً امپراتور جهان بود دانیال نوجوان در طی سالها چنان شهادت عمیقی از خود نشون داد که با اون شهادت به نبوکت نصر گفت تو از من یک بابلی نخواهی ساخت من از تو ایماندار خواهم ساخت در باب چهار دانیال یکی از مهمترین شهادت‌های کتاب مقدس رو می‌خونیم این شهادت شخصی امپراتوری بابل نبوکت نصر هست چیزی که او میگه اینه که رویایی دیده و بر اساس تعبیر اون رویا او عقل خودش را از دست خواهد داد اگر شما با بیمارستان های روانی آشنایی داشته باشید میدونید که بعضی از اونها به لانه های تشبیه شدهاند بسیاری از اونها جاهایی هستند که دلتون نمیخواد اونجا باشید یا جایی که نمیخواید عزیزانتون تون اونجا باشن حالا به ایام بیماری نبوکت فکر کنید بیماری او شبیه چه بیماری بود جوابتون رو در باب چهار کتاب دانیال میبینید كه نصر فکر میکرد که حیوان هست او مانند یک حیوان زندگی و رفتار میکرد او در بیابان با موهای بلند و ناخونهای عجیب و غریب زندگی میکرد و علف میخورد همه اینها در رویا و تعبیر رویای نبوکت نصر نبوت شده خدا از اینکه او را به چنین تجربه وحشتناکی انداخته بود منظوری داشت این منظور بارها در باب چهارم کتاب دانیال عنوان شده. منظور از این تجربه این بود که او بدون حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی کند و آن را به هر که بخواهد میدهد. نصر باید این رو یاد می گرفت. او هفت سال مانند یک حیوان زندگی کرد تا بالاخره اون چیزی رو که خدا میخواست یاد گرفت. وقتی او بالاخره یاد گرفت که خدا حاکم مطلقه و یا به عبارت دیگه خداست که همه چیز رو کنترل میکنه نه انسان. این خداست که قدرت حکومت میده، این خداست که به هرکی انتخاب کنه قدرت میده، اون موقع به سمت خدا برگشت. او به سوی خدا نگاه کرد، خدا رو جلال داد و او رو هم و پرستش کرد و اقرار کرد که خدا مسئول همه چیزه. وقتی باب چهار کتاب دانیال رو میخونید، به این نتیجه میرسید که نبوکت نصر باید مرد کل شقی بوده باشه. هفت سال طول کشید تا با خدا موافقت کرد. وقتی ما انبیاء کوچک را مطالعه کنیم، خواهیم دید که یونس به مدت سه شبان روز در شکم یک ماهی بوده. یونس به این دلیل به شکم ماهی رفت که می من نمیرم، نمیخوام برای دشمنانم موعظه کنم. بعد از سه روز ماندن در شکم ماهی بزرگ، یونس سه بار قول داد. من میرم، من میرم، من میرم و نجات رو برای دشمنانم موعظه می بعد از اون بود که یونس نه تنها احیا شد، بلکه شد سه روز طول کشید تا بالاخره یونس گفت به نینوا خواهم رفت و بعد از اون ماهی بزرگ او رو به ساحل قیم می میکنه من اغلب فکر می کردم که اگه خدا منو توی شکم ماهی قرار میداد من سه شبانه روز تحمل نمیکردم که بگم میرم حدود سه ثانیه بعد من میگفتم میرم حالا اینکه یونس در شکم ماهی بوده به کنار به این فکر کنید که یونس چقدر کل بوده چقدر از نینوا و نینوایی ها متنفر بوده که سه شبانه روز در شکم ماهی مقاومت کرده خب کل شقی نبوکد نصر را ملاحظه کنید هفت سال طول کشید تا بالاخره او اقرار و اعتراف کرد حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی کند و آن را به هر که میخواهد میدهد. او شاه شاهان رب و پادشاهی او پادشاهی ابدی و بی پایانه. یک بار در یک کارگاه ساختمانی من یه سرکارگری رو دیدم که یک کلاه ایمنی سایز سه به سرش گذاشته بود و یک پیراهن یقه گشاد پوشیده بود با گردنی بر افراشته راه میرفت که به راحتی در مقابل هر کسی و هر چیزی خم نمیشد وقتی کتاب مقدس کسانی رو که از اعتراف به حق فرمان روایی خدا در زندگی هاشون میکنن صحبت میکنه چنین کسانی رو گردن فراز میگه اولین باری که با به چهار کتاب دانیال رو خوندم، نبوکت نصر رو مثل اون کارگر ساختمانی تصور میکردم نبوکت نصر یقیناً باید گردن داشته باشه. حدود 7 سال طول کشید که نصر بلاخره زندگیش رو تسلیم خدای حقیقی و زنده کرد. نمیدونم آیا تجربیاتی مانند رفتار نبوکت در شرایط زندگیتون داشتید؟ چقدر طول کشید تا تونستید به خدا بگید خداوند و خدای من، خدایا تو مسئول هستی؟ تو حاکمی و اختیار زندگی من در دست توست. این چیزیه که منظور پولس رسول در اول قرنتیان دوازده سه هست وقتی که روح القدس در زندگی ما جایگاه خودش رو داشته باشه. اون موقع هست که ما میتونیم بگیم عیسی خداونده این چیزی بود که عیسی در باب سوم یوحنا در موردش صحبت میکرد که اولین نشانه تولد تازه اینه که ما با وارد شدن در رابطه با خدا جایی که او پادشاه و حاکب ماست و ما قوم فروتن او هستیم ملکوت خدا رو میبینیم و وارد ملکوت خدا میشیم عزیزان آیا تا حالا توی زندگیتون با مشکلاتی مواجه شدین که به نظر لاینحل هستن اگر مواجه نشدین، شاید بشین. دعای ما اینه که در اون موارد شما مثال دانیال و سه دوست او رو به خاطر بیارین. به خاطر بیارید که به خدا اعتماد کردن. یا شاید شما هم هنوز مثل نبوکت نصر هستین و یا کسانی مثل نبوکت نصر رو میشناسید که مقرور و کل شق هستن. از اینکه اعتراف کنن خدا، خداوند زندگی اونهاست، امتنامی کنن. شما رو تشویق می‌کنم که شهادت قدرتمندی باشید که اونها رو به طرف ایسای مسیح خداوند و منجی ما هدایت کنید. امیدواریم فیض خداوند ما با شما باشه. شما رو برکت بده و هدایت کنه.